یک نکته دیگر هم وجود دارد که اون هم اهمیت این کار رو نشان می‌دهد با او تلاش است که معلم زحمتی است که معلم بر خود هموار می‌کنه در اتاق درس ما در محیط آموزش معلمین با کودکان با نوجوانان با اخلاق‌های مختلف با احساسات گوناگون، حیجانات جوانی مخاطبین مواجهه اینا رو با تحمل کنه، صبر کنه، اینام ارزش کار را بالا می برد. بنابراین روز معلم روز مبارک است. انشالله بر همه معلمین مبارک باشد و بر ملت ایران مبارک باشد.